بسم الله الرحمن الرحیم المبتده والخبر رسیدیم به بحث مبتدا و خبر المبتده اذا کانا نکرتن مبتدا زمانی که نکره باشد الامثله شما با امثله گروه الیف رو دقیق بفرمایید الیون محذبون الزراعة عماد الثروة أنت مجد هذه منارة الإسكندرية الذي أعجبني في القاهرة نظامها صاحب الحاجة مولع بإنجازها دارين أمثلية قروه ألف مبينيم كمبتدى معرفة هست مبتدى معرفه هست ولی در این درس به شما میخواهد بگوید مبتدا زمانی که چه باشد نکره که در قسمت بیت توضیح میداد علی و محذبون ترکیب دیگه بسیار ساده هست میفهمیم بلا سوحیل علی و محذبون همه شنچونینند اما امثلی گروه بی رو دقت بفرمایید ما مجتهدون غائبون مجتهدون که اینجا مبتدا هست نکره هست برخلاف امثله گروه الیخ غایبان هم خبر هست حل کریمون یوغی ثلی ملحوفه کریمون که مبتدا هست چه نکره هست طالب احسانن واقفن طالب نکره هست زهرتون نکره هست فی که شممون شممون هم که مبتداست نکره هست اندی کتابون کتابون که نکره هست خبر مبتدا هست چه هست نکره هست پس بزرگواران اصل بر این که مبتدا چه باشد معرفه باشد. ما میخواییم خبر بدیم در مورد چیزی که شناخته شده هست علی رفت علی ایستاده است، علی عالم هست ما میخوایم خبر بدیم در مورد چیزی که چه هست معرفه هست ولی نکره هم قرار میگیرد اما زمانی که حالا بیایم تو قاعده پنجه و دوم کتاب این مسئله رو بیان میدارد الاصل فی المبتدئی ان يكون معرفتا اصل در مبتدا بر معرفه بودن است و یاقع نکره تن اذا دلت علا عموم و نكره واقع میشود زمانی که دلالت بر چی کند؟ عموم کند. چه زمان دلالت بر عموم میکند؟ بعضی از توضیح داده است کما از سبقت به نفی زمانی که قبل از اون نفی آمده باشد مانند ما مجتهد غائب مانند ما مجتهدون غائب اینجا چی اومده است قبل از نفی بله اینجا نفی اومده است او استفهام یا قبل از نکره استفهام بیاد مانند هل کریمون یوغیث الملهوفه او دلت علا خصوص یا دلائن نکره دلالت بر خصوص کند یا دلالت بر عموم که ذکر شد یا دلالت بر چه؟ خصوص کما اذا اضیفت لنکره تن. چه زمان؟ زمانی که مضافه به نکره شود مانند طالب و احسانه نه. طالب میشه مبتدا نکره هست ولی چون خصوص شده مضافه به نکره شده میتواند مبتدا واقع شود خصوص شده دیگه واقفان هم خبر هست او وصفت یا طریقه بعدی خاص شدن است که وصف بشه چه شود؟ مانند زهرتون سفراء گله زرد زبولت پجمرده شد خب اینجا زهرتون باوجود این که نکره هست میبینیم مبتدا واقع شده است. چرا چون وصف شده است. و در کتاب قطرون ندا استاد سهل که شما اونو خوندید این مثال اومده است. لعبدون عبد مؤمنون خیرون بله عبد مبتدا هست ولی واس شده مؤمنه صفتشه مؤمن چشه صفتشه بریم جلوتر او تقدم ها خبر ها یا یا زمانی مبتدا میتونه نکره باشد که خبر قبل از مبتدا آمده باشد که خبر قبل از شما آمده باشد و این چه زمانی است و هو ظرفو زمانی که ظرف باشد مانند فیکا شممون شممون مبتدا هست نکره هست ولی چون در آخر اومده میتونه نکره مبتدا بشه فیک که ظرف هست خبرش هست شبه جمله هست او جارون و مجرور یا زمانی که خبر جارو مجرور باشد اندی کتابون کتاب مبتدای مؤخر هست و اندی هم خبر مقدم چون خبر قبل از مبتدا اومده پس نکره هست و این درس شما یعنی مبتدا زمانی که نکره باشد فقط یک قاعده داشت که تمامشون رو در همین قاعده آورده بود اما این درس بعدی